بروج در واقع به برج ها میگن بروج البته دو معنی داره یکی همه سیاره ها که سیر میکنند و ها را برج میگویند هر یکی برج است هر سیاره ای و بعضی میگند که بروج نام منازل شمس است خورشید هر سیروزی روزی در یک منزل قرار می گیرد به همین خاطر در فارسی هم ما برج می گیم برج یک برج دو چرا برج یک چون در این برج خورشید در این سی روز در این موقعیت از اون مدار خودش قرار داره برج بعد در موقعیت دوم قرار می گیره برج بعد در موقعیت سوم قرار می گیره و فصلها هم بر اساس همین موقعیت خورشید ایجاد میشه مثلا فصل بهار است فصل گرماست فصل زمستان بستگی در اون جایگاه و اون برج خورشید کجا باشد در هر برجی باشد لذا فصل هم ایجاد میشه فصل سردی و گرمی هم ایجاد میشه به این خاطر این اسم این سوره بروج هست در این سوره هم بحث بحث قیامت هست و شواهدی خداوند بر احوال قیامت اینجا ذکر میکند. چندین شاهد هستند که اینا گواه هستند و شاهدند که قیامت برپا میشه. اما این سوره یک داستانی پس منظری دارد که در روایت ها هم آمده در روایت های حدیث هم آمده در صحیح مسلم آمده و در تفسیر ها هم آمده بعضی از اصل جریان که مشخص است در روایتهای صحیح آمده اما بعضی چیزها را اهل تفسیر اضافه کم کردن از اسرائیلیات گرفتن، الله اعلم آنها درستند یا نیستند و اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلام فرمود در زمانهای گذشته یک پادشاهی بوده اما این زمانهای گذشته چه زمانی الله اعلم مفسرین نوشتند که چهل سال قبل از بیست رسول الله صلی الله علیه و سلام یعنی در همون آغاز ولادت آن حضرت یا قبل از ولادت آن حضرت صلی الله علیه وسلم، این پادشاه در ملکی یمن بوده. کجا بوده در یمن بوده. اون زمان دین حق و دین توحید دین سیدنا ایسال صلوات و سلام بوده. لذا این پادشاه پادشاهی بودفرستی بوده. و پادشاهان پرست و کافر همیشه سعی می کنند با استمداد از ارواح خبیسه کارهایشون را به پیش ببرند با سحر و جادو و جنبر کار میکردند این پادشاه هم جادوگری داشته الان هم خیلی هستند بسیاری از سردمداران بعضی از کشورها کشورهای کفر با جادو کار میکنی یهودی ها میگن بزرگترین جادوگران یهودی ها هستند و واقعا این درسته در قرآن مجید شما خاندی سوره بقره که بیشتر جادو با یهود کار داره لذا امروز هم خیلی از اهل دنیا هستند که جادو میکنن، جادوگران خطرناکی هستند یهودی يهود، ها حرف اول را در جادو و جادوگری میزنند و بعد از اون هندوها هرچی که بیدین تر و کافر و مشرک باشد در جادو دستی طولانی تر دارد لذا این پادشا جادوگری داشت که هر وقتی نیازی بود کارهایش را از طریق این جادوگر به پیش می برد انجام میداد. تا اینکه این جادوگر می خواست بمیره پیر شده بود ضعیف شده بود احساس کرد آخر عمرش هست اون جادوگر گفت که اگر من ببیرم بعد از من کسی نیست که این وظیفه من انجام بده پس کسی را تعیین کن یک پسر بچه زرنگی که من او را آموزش بدم لذا یک پسر ای را پیدا کردند که زرنگ بود باهوش بود زکی بود اسمش را گفتند عبدالله ابن ثامر والله و عالم. تو حدیث اسمش نیامده تو کتاب ها آمده. اسم پادشاه میگه یوسف بعضی میگه یوسف زو نام های دیگری گفتن. بالاخره. این پادشاه این بچه را پیدا کرد گفت بگردین به مامورانش با بچه ذهین و کنجکاوی باشد. این بچه را وقتی که تحویل داده این بچه هر روز می رفت. آموزش می گرفت جادو یاد می گرفت و بعد زور خانهش می آمد تا اینکه یک روزی برخور کرد با یک آدم با ایمان و موحدی از پیروان سیدن عیسی علیه و السلام راهیبی بود عبادت گذاری بود اون راهب این بچه را تبلیغ کرد تشویق کرد و او را به سوی خداپرستی و یک تاپرستی تشویق کرد و به او فهماند که نافع و زار فقط خداست غیر از خدا هیچ کسی نمیتونه به انسان نه نف برساند نه زرار برساند لذا این بچه در بین دراهی گیر کرده بود اون چیزی که راهب میگفت با اون چیزی که جادوگر میگفت در تضاد داشتند راهب معتقد بود که همه نفع و زرار به دست یک خدایی هست که دیگران هیچ اختیاری ندارن اما جادوگر همش استمداد و کمک از این روح خبیسه، از اون روح از ارواح مختلفه اونا استمداد میکردند و برای پیش برد کار خودشون از هر کس هر کس کمک می‌گرفتند. لذا برای این منده بود هر روز درس اون جادوگر را هم گوش میکرد در وسط راه درس راهب را رفتن هم پیش راهب میرفت برگشتن پیش راهی میرفت و از راهی متاثر شده بود از اینم درس میگرفت درس خداشناسی درس توحید تا اینکه در همین دراه بود در وجود خودش درگیر بود کنچکاف بود که کدوم یک درست میگه یه روزی دید که مردم همه سرگردان هستند و مسیر مسلوده یه جایی میخوام برند و مردم می ترسم بره چه چی، چی خبر گفت اونجا یه ای هست که کسی نمیتونست بره لذا سنگی برداشت و اینجا دعا کرد گفت که خدایا اگر دین این راهب درسته و مسیر این راهب درسته من بنام تو می زنم این سنگ را به اون حیوان و تو او را با همین سنگ نابود بگرد که زد اون حیوان اون در رنده بعضی نوشتن شیر بود او از بین رفت برای مردم هم جای تعجب بود و برای خودش هم عجیب بود که نام خدا یا اسم اعظم بعضی گفتند چه تأثیری داره که یاد گرفته بود و به صورت خارق العاده به صورت کرامت کرامت اون را از بین برد. بزر مردم معتقد شدند هر جه هر جه تعریفش کردند که جوانی هست با این مشخصات و اورادی بلد هست نامهایی را به زبان میارد که وقتی که میخوند چنان موجزه میعافریند یک کوری بود از درباریان پادشاه که تازه چشماش را از دست داده بود او آدرسی را گرفت گفت شاید این وقتی که بلد هست بتونه چشمای من را درمان بکنه با همون ذکر و اوراد خودش وقتی که پیش این آمد گفت من بشرتی چشمای تو را می که دین من را قبول کنی اون گفت اگر چشمای من باز بشه و بینا بشه هر چی تو بگی من قبول می کنم لذا همون اوراد را از کار را نام خدا را ورد کرد و خاند و از الله عزوجل برای چشمان او آفیت و سلامتی خاص الله تعالی دید را و بینایی اون فرد را برگرداند او چنان متاثر شد که بالاخره فورا دینش را قبول کرد و گفت من بر مسیر تو هستم نه گفته نماند که جادوگر گو گفت، راهب گفته بود اگر یه وقتی برایت مشکل پیش آمد ببینی که آدرس منو ندی به کسی بالاخره اون کور چون که از درباریان بود اون رفت تبلیغات کرد تبلیغات کرد که چنان پسر ای هست و چنان دینی دارد تبلیغ دین را کرد تبلیغ توحید کرد تا پادشاه متوجه شد که اینها دینی غیر از دین من دارند و اینها خدای دیگر را می پرستند اینجا بود که پادشاه برخور کرد هم اون نزدیک فرد نزدیک خودش را دست دستگیر کرد و هم بچه را شکنجه کرد تا اینکه همه را پیدا کرد هم راهب را بالاخره راهب هم لو رفت و پادشاه هر دورا را کشت هم راهب را کشت و هم اون درباری خودش را کشت حکم قتلشون را صادر کرد و هم حکم قتل بچه را اما بچه به قدرت خدا کشته نمیشد. الان اینجا داستان های زیادی گفتند مثلا تر همین داستان هاست که دستور داد ببرید از روی کوه پرتاب بکنید اونجا که می رفتم بچه همون اوراد و اون ازکار را میخواند تمام معمورین را خدای از زوجل پرت می کرد و بچه سالم بر می گشت گفت ببرید این را تو قایق تو دریا بیاندازید. بالاخره اون باز هم همون اوراد و ازکار خودشون غرق می شدن بچه سالم بر می گشت آخر پادشاه منده بود و این پسر بچه از آن جایی که زرنگ بود و متوجه شد که من باید پیام خدا را به دیگران برسانم چگونه پیام را میخواست به دیگران برساند که خودش را فدا بکند به پادشاه گفت در یک صورتی میتونی من را بکشی گفت به چه صورتی گفت همه مردم و شهر را جمع کن در میدان و فلکه شهر همه را جمع کردند. اونجا که جمع کرد گفت که این تیر را بگیر و بگو که من این بچه را میزنم این غلام غلام یعنی پسر بچه این غلام را میزنم به نام رب حاضر غلام. به نام رب این غلام میزنم. اون وقت اگر تیر را بزنی میتونی منو بزنی. پادشاه کودن نمیدونست که اون داره شهید میشه و تبلیغی برای دینش میشه. گرفت تیر را گفت به نام رب این غلام میزنم این غلام را. زد تیر اصابت کرد. این عبدالله ابن سامر شهید شد. شهید شد تمام مردم شهر جمع شده بودند و وقتی که این صحنه را دیدند همه گرویدند به دین توحید همه گفتند دین این پسر بچه دین حق است و ما دیگه بت عبادت نمی کنیم همین خدا را که این بچه عبادت میکرده ما عبادت میکنیم بالاخره این بلایی شد مصیبتی شد برای پادشاه پادشاه دیوانه شد چون مبلغ اون دین بت پرستی بود و از قدرت و قوه قهری خودش استفاده کرد گفت هر کسی بر نگردد من او را زنده زنده میسوزنم. لذا دستور داد که خندقهای و چالهایی کندند و حفر کردند و این چاله ها چنان آتشهای روشن کرد که زبانه آتش و شعله آتش آسمان به طرف آسمان میزد. لذا هر کسی که می من مومنم من به خدا ایمان در اون را بینداخت حتی داستان مادر و فرزند که مولانا رومی هم ذکر کرده اول فرزند را از بغل مادر گرفت و تو آتش انداخت و بعداً این مادر مقدار تردد کرد پسر از داخل آتش زدازد اندرا مادر که من اینجا خوشم گرچه در ظاهر میان آتش هم. داستانش را مولانا رومی مفصل بیان کرده لذا همه کسانی که انجا بودند شهادت را قبول کردند اما دوباره برگشتن به شرک را و دین بطفرستی را قبول نکردند الله عزوجل این داستان را ذکر فرموده وَالسَّمَائِ ذات دا البروج بروج را توضیح دادم قسم به آسمان یعنی آسمان شاهده است آن آسمانی که دارای بروج هست، دارای برج هست. والیوم الموعود و قسم روز، اون روز موعود، یعنی روز قیامت خود شاهید است. و شاهده و مشهود و همچینی قسم به و مشهود. شاهد یعنی اونی که حاضر میشه. دربار شاهید و مشهود تفسیرهاي زیادی گفته شده. بسیاری معتقدند که شاهد اون کسی که حاضر بود اونجا اونها کشته میشدند و مشهود خود اونهایی که کشته میشدند اما قول صحیح و قول درست دربار شاهد و مشهود اینه که شاهد منظور روز عید قربان هست مشهود روز عرفات هست که ما میروم اونجا حاضر میشیم یعنی به این زمان مبارک و مقدس و به مکان مبارک و مقدس الله سوگند یاد کرده و یعنی اونها را شاهد گرفته قتل اصحاب الاخدود یعنی م... کشته بشند یا مرگ بر اصحاب اخدود اون کسانی که چاله را عفت کردند چالها را درست کردند النار اون اخدودی که دارای آتش بود ذات الوقود دارای شعله بود دارای اخگر بود دارای زغال روشن بود از هم علیها قعود زمانی که اون ظالمها برون آتش نشسته بودند وهم هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود و آنان آنچه که انجام میدادند با مؤمنان گواه بودند مؤمنان را چگونه سوزندند، چگونه شکنجه دادند، چرا این کار را با مؤمنان کردند؟ الله می و ما نقم منهم، اینجا اشاره به اهل مکه هم هست، که شما آنچه که با اصحاب و یاران رسول الله داری می شکنجه شم می دهید، هر روز کتک شم می زنید، هر روز به زنجیر میبندید؟ هر روز تو ریگستان ها، شلاقشون میزنید شما هم اینا گناهی دیگه نکردند جرم دیگه نکردند مگر به الله ایمان آوردند و ما نقموا منهم نقم ای می میگویند اشکال و ایراد را میگویند یعنی ناپسند نکردند از اونها مکروه و خراب ندانستند از اونها مگر این چیز را خراب دانستن، این را ننفسند الا الله يؤمن بالله العزيز الحمید. مگر اینکه آنها ؤمنو ایمان میآورند یعنی ا دیگری در اونها نمی بینند مگر اینکه اون ایمان میآورند به الله آن الله که العزیز اون الله که غالب هست الحمید سطود شده. اللذی له ملك السماوات وَالْأَرْضِ آن الله اكبر ايوس شاهی آسمان ها و زمين تصرفات آسمان ها و زمين والله على كل شيء شهيد الله هم قدرتش كامل له ملك السماوات والارض وهم علمش كامل بر هر چیز حاضر و ناظر است همه اعمال و حرکات شما را زیر زربین دارد والله علی كل شيء شهید ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات همانا انهایی که اذیت و آزار رساندن مردان مؤمن و زنان مؤمن را از مشرکین مکه اونها مراد است این تخویف اخروی است انهایی که اذیت و آزار میرسانند ثم لم يتوبو سپس توبه نکردند رجوع نکردند از شرک و کف بر نگشتند فلهم عذاب و جهنم برای عذاب جهنم هست ولهم عذاب الحریق برای آنان عذاب سوزان هست عذاب که انها را می ان آمنوا الصالحات این بشارت در مقابل اون تخویف کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند لهم جنات تجری من تحتها الانهار برای انها باغاتی هست جناتی هست که جاری هست از زیر درختهای اون از زیر نهرها ذالک الفوز الكبير این موفقیت بزرگه که خداوند موفقت بگرداند و جنت نصیبت بکنه. اما از اون گرفت خدا عذاب خدا که قبلا ذکر شد از اون غافل نشید که اون خیلی سخته ان بطش ربك لشدید همانا گرفت پروردگارت ربت خیلی سخته هو انه هو یبدئ و یعید این متعلق است به اون یوم الموعود اون یوم موعود کی میاد الله میفرما انه هو یبدئ و یعید همانا شان این است که پروردگار از ابتدا خلق کرده و یعید و سپس دوباره اعاده می کند یعنی انسان را هم او پیدا کرده و هم او دوباره زنده می کند و هو الغفور الودود اما اون ذات ذاتی هست که غفور هست بخشاینده است می بخشد با توبه و بلا توبه می بخشد را الودود یعنی دوستدار مؤمنان هست اهل ایمان را دوست دارد کسی که بهش ایمان داشته باشد خدا او را خیلی دوست دارد اما ذو العرش المجید این صفت جلالش هست دارای عرش مجید بسیار دارای جلال و عظمت و قدرت هست عرش بسیار دارای مجد و شرف فعال لما یورید این ذات هر کاری که انجام هر کاری که اراده بکند انجامش میده لما یورید هر کار که ارادش باشد فعال هست انجام دهنده هست هل اتاک حدیث الجنود گروهی دیگر از شاهد و مشهود نمونه دیگر از شاهد و مشهود فرعون هم شاهد بود و بنی اسرائیل مشهود بود او هم شکنجه میدادو مثل شما مثل ابو جهل و امیه مثل اطبا و شعبه اون هم شکنجه میداد مشهود کی بود؟ بنی اسرائیل بود همونطور که اینها شاهد بودند و مشهود امار و یاسر بود سمیه و خباب بود الله می فرماید که هل اتاک حدیث الجنود اگر دقت بکنیم این یک نوع اشارات تلویحی هست به عملکرد سوء مشرکین به بد مشرکین با رسول الله و با یاران رسول الله هل اتاک حدیث الجنود آیا پیش تو آمد خبر لشکریان لشکریان کی هستن؟ فرعون و فمود یعنی فرعون و قوم سمود خبرشون را داری میدونی عاقبت چی شد مشخص عاقبت چی شد به عذاب همیشگی گرفتار شدن بل الذين کفروا في تكذيب بلکه واقعیت این کسانی که کف کردن عمدن آنها در تکذیب هستند اونا تکذیب میکنند حق را راه حق را کتاب حق را مسیر حق را که مسیر توحید باشد در حالی که بیخبرند بی خبرند، غافلند والله من ورائهم محیید خداوند از پشت سرشان آنها را احاطه کرده. این متعلق به وسممع ذات البروج است. همونطور که آسمان حاوی تمام برجها هست و در برگیرنده تمام برجها هست هرچی که سیاره و ستاره هست در دل آسمان است همچنین خدای از زواجل احاطه کننده تمام کفار هست. همه در قبضه قدرت الله هستند بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ الله می فرماید که در این متعلق به بل ببلیلذین است، هست بلیلذین کفرو فی تکذیب شما خاندید کفار تکذیب میکنند در حالی که این قرآن قرآن ظلمجد است، ظل شرف است. قرآن دارای عظمت است. نباید این را تکذیب کرد باید قدردان این کتاب بود باید از این کتاب با جان و دل استقبال کرد چنان دارای مجد و بزرگی هست که فی لوح محفوظ جای اصلی و جای اولیش در لوح محفوظ است. هنوز در لوح محفوظ این قرآن محفوظ است. لذا از چنین جای والای آمده این سزاوار تکذیب نیست این سزاوار استقبال و ایمان و اطاعت هست صدق الله مولانا العظيم